بسم الله الرحمن الرحيم يازده الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي در این مبحث بخط فرق بين حكم تكليفي وحكم وضعي وزهير و توضيح هل يمكنك فرق يبقى بجار دارن در شماره يازده بكتاب ألف الحكم التكليفي يتطلب فعل شيء او تركه او اباحة الفعل والترك للمكلف اما الحكم الوضعي فلا يفيد شيئا من ذلك فارق بين حكم التكليفي وحكم وزي بفارماد ان هاسك حكم تكليفي فعل یک چیزی یا ترک یک چیزی رو می طلبد حکم تکلیفی انجام یک چیزی یا ترکش را می طلبد یا باه بودن یک کاری رو بباه بودن انجام و بباه بودن ترک یک کاری رو می طلبد برای نکلف در حالی که حکم وضعی همچنین چیزی رو نمی رساند افاده همچنین کاری حکم وضعی میگه که این چیز یا سبب است یا شرط است و یا مانه از آن ولی حکم تکلیفی نه یا میگه این کار رو انجام بده یا میگه این کار دست بکش یا میگه که آقا انجام و عدم انجام این کار براش چیه چیه مصابیست بابا بس الفرق الأول بين الحكم التكليفي ووزي با فرق دوهم المكلف به في الحكم التكليفي أمر يستطيع المكلف فعله أو تركه فهو داخل في حدود قدرته لأن الغرز من التكليف امتصال المكلف ما كلف به. و لهذا کان من القواعدی فی الشریعت لا تکلیف الا بمقدوره دقیق داشته باشید فرق دومه حکم تکلیفی ووزئی این هست که مکلف بهی در حکم تکلیفی یعنی اون کاری که شما بهش تکلیف میشید کاری است که مکلف تواناییش رو دارد که انجامش بدهد یا ترکش کند مکلف بهی در حکم تکلیفی یعنی اون فیلک شما بهش دستور داده شد پس مکلف بهی در حکم تکلیفی یک امری است که مکلف توان ترک و انجامش را دارد داخل در توانای شخص هست اصلا زیر هدف از تکلیف همین است که مکلف فرمان برداری کند به آن چیزی که دستور داده شده است و ما و می به این خاطر در شریعت اسلامی ای داریم که می فرما... که میگوید لا تکلیف الا به مقدور اصلا تکلیفی وجود ندارد مگر به کاری که در توانایی است در مقدور است، در قدرت است یعنی اگر انسان توانایی به کاری نداشته باشد مکلف هم نمیشه. آقا مکلف نمیکنه شما رو پرواز کنی. و اگر میتواند انسان پرواز کند پس فرق دیگر حکم تکلیفی و حکم وضعی این است که در حکم تکلیفی شخص یا مکلف به امری مکلف می شود که در توانش باشد انجام یا ترکش اما فی حکم الوضعی اما در حکم وضعی فلا یشتارتو فی موضعی این یکون فی قدرت المكلف. دیگه شرط نیست که در قدرت چه باشد مکلف باشد آقا زوال خورشید سبب واجب شدن چه؟ نماز سهره ولی های این که خورشید زوال بده این از وظایف مکلفه؟ نه این یک حکم وضعیه این یک حکم چه و در توان مکلف هم نیست بیتواند در مکل... توان مکلف باشد و بیتواند نباشد ببینیم که بعضی از این احکام وضعی در توان مکلف هستن و بعضی دیستد. پس اما فر الحُکم الوائِق فلا یشترد تو فی موضوعی آیا کن فی قدرت المُکلف. شرط اینه که در قدرت کی باشد، مُکلف باشد. و برتعب کان ابن هو المقدور ل و ابن هو عن قدرته. یه از انجاز که بعضی از حکامات و در توان مُکلف است، در مقدور مُکلف است. و بعضی های دیگر خارج از توانه مکلف هستن پس این آخری شماره 11 هم فرق بین حکم تکلیفی و وضعی بود که گفته بود حکم تکلیفی طلب میکنه انجامش کاری یا ترکش رو یا مباحبودن رو فرق دوگوبشون هم این بود که حکم تکلیفی در توانه مقلب است اما حکم وضعی بی توانه در توانش باشد و بی توانه در توانش نباشد <تصفيق> این مبحث اول اصول فقه بود تعریف حکم و اقسام اصلیش ببینید تعریف حکم و اقسام اصلیش که گفته بود حکم تعریف کرد بعدا گفت یا تکلیفی هست یا وضعی تا اینجای ای کار تنون شد المبحث الثانی بحث دوبهش چه هست؟ حکم تکلیفی حالا که گفت آقا یا حکم تکلیفیه یا وضعی امتدا بیاد اقصام حکم چی رو بیان بیکنه؟ حکم تکلیفی رو امتدا بیاد اقصام حکم تکلیفی رو خیلی بحثیست شیرید و بفید شباره دوازون بگه یا قصب یا یقسم بعض از اصولین حکم تکلیفی را به 5 اقسام تقسیم میکنند اکثر اصولیها حکم تکلیفی رو بر چند دو بر چند قسم بر پنج رو دقت داشته باشید یک ایجاب ها که خودمون بهش میگیم واجب دو نادو همون مستحب سه تحریب چار کراحت پنج اباحه دقت داشته باشید چرا دقت داشته باشید اگر یاد باشه اون جایی که اومد گفت حکم تکلیفی یا دستور به کاری میده اگر به شکل الزامی دستور بده بشه میگن ایجاب دیگه واجب اگر دستور بده به شکل الزامی نباشه بش میگن مستحب اگر دستور به ترک بده به شکل الزامی بیشه تحریم اگر دستور به ترک بده اما به شکل الزامی نباشه باشه بیشه کراحت اگر اختیار بده بهش بیدن چه؟ ای که همون مباحه اینا رو البته الان تعریف میکنه پس اکثر اصولی ها حکم تکلیفی رو به چند دسته تقسیم میکنند به پنج دسته ایجاب مندوب ندب تحریم، کراهت و امح و نتكلم فی ما یلی عن کل نوع من هذه الانواع فی مطلب الا حده بیگه در رابطه با حدیق یزینا به شکل متل... جداگانه سخان و خواهیم گفت المطلب اول در مطلب اول الواجب ابتدا چرو توزیب ده؟ واجب رو ابتدا کدوم توزیب ده؟ واجب از اقسام حکم تکلیفی و آقا تکلیفیه چرا؟ چون در واجب از ما چیزی طلب شده در واجب از ما چی شده؟ خودش در فرق بین حکم تکلیفی و وضعی که توضیح داد پس ابتدا الواجب شماره سیزه به کتاب الواجب و شرعان هو ما طلب الشارع و فعله على وجه اللذوب على وجه اللذوم به حیث جذب تاریکه و معذب و ده فائل و خدمتشی از سوواب داشته باشید تعریف ساده است و در اادال ضروری میفرمایت واجب آن است که شارع انجام آن را به شکل لزومی طلب کرده است دقت داشته باشید میفرماید واجب آن است که شارع الله مطال، انجام آن را به شکل لزومی و الزامی و اجباری طلب کرده است گونه ای که تارک آن مزمت می شود و همراه مزمت اقوبت هم وجود دارد یا به عبارتی مستحق عقوبت هم هست حالا اون دست فروردگار است که اقوبت بکند یا نکند ولی مستحق اقوبت هست شخص و یمد و الثواب و انجام دهنده واجب و انجام دهنده آن مدح کرده می شود ستوده می شود و همراه با این مدح ثواب هم دارد پس تعریفی بسیار ساده بیفرماید واجب آن است که شریک صاحب شرع شارع انجام آن را به شکل الزامی طلب کرده باشد به گونه ای که تارکش مذمت شود و همراه مذمت عقوبت هم دارد و انجام دهنده آن مدحی شود و همراه مدح و همراه مده 17 دارت إنت عريفة شخص واجب. واجب ولزوم الفعلي استفاد بصيغة الطلب كصيغة الأمر المجردة فهي تدل على الوجوب أو بالترتيب الإقابة على ترك الفعلي فإقابة الصلاة وبر الوالدين ونحو ذلك كلها من الأفعال الواجبة التي ألزم الشارع المكلف بها ورتب الإقابة على تركها خب یک مسئله دیگر شما به عنوان اصول ابوس اونو بدونید میگه ما از کجا بدونیم که این عمر واجبه آیا دقت داشته باشید میگه از کجا بدونید که این عمر واجب است میگه و لزوم فعل از صیغه طلب گرفته میشه لزوم فعل یعنی که این لازمی هست بر مکلف اجباری هست میگه از سیغه طلب گرفته میشه این مسئله چطوری؟ طوری؟ سیغه امر سیغه چی؟ امر که همراه با قرینه دیگه ای نباشد قرینه باش نباشد که به ما بگه که آقا منظور از امر واجب نیست بلکه مستحب است پس اگر امر مجرد بود همراه باقرینه نبود بسید این که اقیبو سلات نماز و بر پای دارید اقیبو فعل طلبه فعل امره بگیم که آقا این پس دلالت بر لزوم میکند دلالت بر اجبار میکند دلالت بر وجوب میکند چرا؟ بگیم چون طلب است اقیبو جه هست. طلب انجامه دیگه نه پس میگه لزوم فل مصطفاد میشه گرفته میشه از سیغه طلب مانده سیغه امر عقیبو آتو زکات سلول الارحام خوب حالا دقت داشته باشید فهیه تدلو علال وجوب سیغه امریک همراه باقرینه نباشه دلالت بر چی میکنه دلالت بر وجوب میکنه. اگر در شریعت اسلام سیغه امر اومده بود بدون قرینه دلالت بر این می کند که این کار هست؟ واجب است. یا دیگه از کجا بفهمیم که این کار لازمیست میگه او به ترتیب الاقابی علا ترک الفعل. یا این که ترکش اقوبت داشته باشد در شریعت اومده است که اگر کسی این کار رو نکند به جهنم میگود اقوبتی براش می میکند پس مشخص میشود که این کار واجبه پس مشخص میشود که این کار چه هست بله متوجه شدید او به ترتیب الاقابی علا ترک فل از کجا دیگر لزوم فل گرفته میشه از که در شریعت آمده باشد که اگر این کار رو انجام ندهید فلان اقوبت رو دارید پس ما پیم فهمیم زمانی که بر یک مسئله اقوبت مترتب شد عقوبت اومد بر ترکش او کار چه است؟ واجب است. خب با تواجبه این مسائل بگه فا اقامت و صلاتی و كلها و نحو ذالک کلها من الافعال الواجبتی اقامه نماز چون با امر اومده است. بر والده و امسال این مسئله همشون از افعال واجبی هستند که الزام کرده است شارع مکلف رو به اینها و اقوبت تایید کرده است بر ترکشون اگر کسی اینها رو ترک کند شارع برشون چکار؟, چکار کرده است؟ اقاب تایید کرده است خب حالا که واجبو واجب رو تعریف کرد و گفت از کجا بدونید که این مسئله واجب است گفت یا باسیغه امری بیاد امر مجرده یا اینکه که اگر این کار رو بکنید در غیر این صورت چه دارد او قومت دیگه حالا میخواد بگه که آیا بین واجب و فرض فرق هست یا نیست در حمید قسمت واجر دوتا اصطلاح توضیح بوده واجب و فرض واجب و ایا واجب همون فرز است یا با هم فرق دارد این سوالو پاسخ بده بگه والواجب هو الفرز عند الجمهور فهو سواء لا يختلفان في الحكم ولا في المعنى فهما یتلاقان على ما یلزم فعله و یعاقب ولا ترک میفرماید که فرض و واجب در نزد جمهور همون یک چیز هستند واجب همون چیه همون فرزه با هم هستند و حکمشون هیچ فرقی ندارد در حکم و در معنا هیچ فرقی ندارد بر اون چیزی اطلاق میشوند که انجامش است و ترکش عقوبت دارد هر دو طب. هم واجب و هم فرض اما الحنفیه اما در نظر صادات حنفی فرق دارد فالنوم يفرقون بينهما من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل، فإذا كان الدليل ذنيا كخبر الأحادي الثابت به كوجوب الأنحية فالفعل هو الواجب وإذا كان الدليل قطيا كنصوص القرآن في لزوم الصلاة على المكلف فالفعل هو الفرض. لقد قد أشتباشين إن خيلي ضروري بفرمايات بيقى أحناف قائل شدان بين الفرز وبينه واجب بازم. از جهت دلیل از جهت چه؟ بازم. از جهت اون دلیلی که لازم بودن اون فعل باش ثابت شده هم واجب ببینید دقت داشته باشید هم واجب و هم فرض در احناف لازمی هستن انجامشون ترکشون رقوبت داره ولی احناف میگن اگر اون دلیلی که این باش ثابت شده این کار لازمی باش ثابت شده اگر دلیل زنده بود اگر دلیل چی بود؟ زن بود قطعی نبود ماند خبر واحد ماند خبر خبر واحد با آقا با حدیث واحد ثابت شده باشه مثلا مسئله ای این واجبه بیگن این چیه؟ اگر با دلیل قطعی ثابت شده باشد مثل قرآن تو تمام قرآن قطعی و دیگه به شکل متواتر ثابت شده ولی طبعا به آهادیت متقاطر نیستن بعضی ها آهادن میگه اگر دلیل زندی بود اون موقع اون چیه؟ واجبه اگر با دلیل قطعی ثابت بود اون موقع چیه؟ فرضه پس میگن زمانی که دلیل زندی بود مانند خبر آهاد اون موقع واجبه مانند واجب بودن قربانی و اگر قطعی بود دلیلش مانند با نصوص قرآن مثلا ثابت شده بود اون موقع قطعی فرض هست مانند لازم بودن نماز ها پس اگر گفتن احناف حکم نماز رو فرض میدنند اما حکم قربانی رو واجب خربانی؟ بله, خربانی. بله. خربانی. آقایون حالا دقت داشته باشید مختصرا سخن اهداف میگوند اگر دلیل زنده بود اگر اون دلیلی که فعلی رو بر ما الزام میکوره اون دلیل زندی بود حالا چه در ثبوتش چه در دلالتش اون موقع اون حکم چه واجب. واجبه و اگر اون دلیل قطعی بود هم ثبوتش و هم چهش دلالتش اون موقع میگن چه؟ فرضه بله پس این فرق ببیره فرض و واجب هست شما زمانی که در کتب شافعیه حمبلیه مالکیه و دیگر فقه ها مراجعه کنید هر اگر گفتن فرض یا واجب حبور یک چیزه بله اما اگر در کتب احناف رفتید برای مطالعه پرداختید رفتید برای مطالعه پرداختید متوجه بشید که بعضی از عبور رو بگن فرض و بعضی هارو بگن چی؟ واجب پس بدونید که بین فرض و واجب چه هست فرق هست فرق هست در نزه احنا خلی نه جمهور میگن نیست جمهور میگن فرقه خلی جمهور نه اینه که ما قولو بگیریم یا نه این خودش بحث تفصیلیه این خودش بحث مفصلیه فعلا شما در این سطح بدونید که نه نه آیا بین واجب و فرق هست یا نیست بله اینو در ذهناتون داشته باشید چیزی. چیز مفرم مفرم. چیز چیزی باشی. آقا مثلا چیزین جا چیزین مثلا خوب زندی یعنی نباشه خبر واحد که با یک راوی ثابت میشه هم هم دا فرق داره چن خدا فرقی نمیکنه چه قربانی باشه چه مسئله دیگر ولی ما یک مسئله ای رو داریم با یه حدیثی ثابت شده حکمش در حدیث واحدی اومده که آقا این رو انجام میدید حدیث, حدیث, حدیث آها آه شو این رو شما بیخورید آقا در اینو در کتابه که به دادن دادن بیخورید اینو رو بیخورید برآن کلش متواتره پس قطیه متواتر جز قطیه های بو تواتر جو متواتر خیر تعریف اینو در اون کتابی که به طول همه رو مفصل فصل عجله نکنید آقا. یه فعلا بدوید. رو خوب اقصا بول واجب چند چاره